بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلات و سلام علی رسول الله و علی آلیه الله و الدائم على دائم علی اللهم یاک نعبد و یاک نستعین خب بحث ما پیرامون سر عذان و اقامه بود حال امشب بیاری یاری خدای عزوجل ابتدام بخریم معنای الله و اکبر رو خدمت شما مطرح کنیم تا یه مقدار به سر این اسم مبارک بیشتر نزدیک بشیم و علت اینکه در نماز میبینیم شروع نماز ما با تکبیر است در هر ببینید فصلی برا رفتن به رکو سربرداشتن از رکو همش تکبیر و از آن به اقامه ما با تکبیر شروع میشد این چه سریست سر حالا ابتدا به الله اکبر اولا اینکه گفته می شود الله اسم از برای ذات است اجازه من اول معنای کلمه اسم رو خیده شما مطرح بکنم اسم یعنی چی؟ آقا می فرمان اسم در عرف در واقع لغت یه معنا دارد و اون می فرمان لفظی که دلالت بر مسما میکند یعنی دلالت میکنه بر یه شخص یا بر یه چیز بی میگن اسم مثلا شما میگید پس نمیدارم درخت این اسم دلالت میکنه بر اون مسما این معنا در اصطلاح اهل لغت است اما در نزد اهل معرفت یه معنای دیگری دارد و اون اینه میفرمان اصلا کلمه اسم یعنی ذات با یک تعیون خاص پس اسم یعنی ذات با یک تعیون خاص حال من یه مثال بزنم که این مختار مطلب این برای همه قابل در واقع توجه بیشد ببینید آقا مثلا شما میگید کلمه منبر در اصطلاح اهل لغت خب این منبر یه لفظیست که دلالت میکنه بر این مسمای چوبه ها با این حیعت خاص اما گفتیم در نزد اهل معرفت منبر در واقع خود این ذات است ببینید حالا یه بسیار کلمه منبر رو هم توجه بکنید ببینید کلمه منبر حالا برای که ببینید معنا توجه بکنید میکنم. از ماده نبر است نبر به معنای اون ارتفاع صوت است بعد منبر یعنی محلی که در واقع بر اون ارتفاع صوت است شخص میاد روی اون می چون بالاتر قرار میگیره صداشو میتونه بالا بیاره و به همه برساند. حالا بگذرم. پس کلمه منبر اسم یعنی این ذات یعنی همین حالتی که هست پس مرابر این اون اسمی که میگیم ذات است خود این در واقع احتیاج به یک اسم دیگه پیدا می کند یعنی شما میگید این منبر وقتی لفظ نیست یعنی خود این هیئت این حالا برای اینکه در ذهن ما این هیئت تجسم پیدا بکند ما اولا یه لفظ براش میاریم که اون لفظ اون وقت یه مفهوم دارد اون مفهوم دلالت میکنه بر این بنابراین میفرمان این اسمی که در عرف اهل لغت میگن اسم اسم اسم است در واقع حالا دیگه وارد این بحث خیلی زیاد معطل نکنم شما رو پس کلمه اس این که میگیم حالا الله اسم است نه غلظه ام این بود که شما این معنا رو توجه کنید پس الله اگر گفته می شود اسم است نه اینکه که الله یه لفظیست الف و لام و همزه و لام و ها و، که اینها دلالت می کند بر او ذات نه بلکه الله دارد خود اون ذات است برای فرمودید بر همین اساس میفرمان فرمان طور که کنه ذات هرگز شناخت نمیشود لفظ شریف الله هم هرگز معناش کسی نمیتونه بفهمد دقت کردید الله یعنی خود اون ذات نه لفظی که دلالت بر اون ذات میکند خیلی فرق است پس شما وقتی میگید الله حالا یه مثال دیگه ارزم می‌کنم یعنی مثالی توضیح ببینید اسم شریف هو لفظ هو که باز اعظم است در واقع به معنا از اسم شریف الله وقتی شما میگید هو ببینید این در واقع به معنا اشاره نیست یعنی اون خود هویت مطلقه رو داره به شما نشون میده وقتی شما میگی هو به معنای ضمیری که داره دلالت میکنه بر یک در واقع شیعی؟ نه اینجا لفظ شریف و هو یعنی اون هویت خود اون که بعد اگر بخوام این رو معرفی بکنیم به تو ذهنمون بیاریم این خودش احتیاج به یه اسم دیگه داره که یه آن لفظی انتخاب شد لفظ شریف الله حلا یه نکته ظریف دم درباره لفظ شریف الله هست می میفرمان این هایی که آخر الله هست این ها همین اشباع شده و بعد شده لفظ شریف هو پس الله اون ذاتی که دان میخواد ذاتی رو نشون بده که نه قابل وصف نیست که نه اسم ندارد رسم ندارد یه ذات نامحدود به خاطر همین وقت بعد از اون اسم در واقع لفظ شریف اکبر آمده که حالا اون رشالا بعد توضیح بدیم وقتی مقتدر معنای این براتون واضحتر تر میشود پس این الله پس بنابراین ذات شد الله با یک تعیون خاصی یعنی چون الله یعنی اون ذات نامحدود پس ما در فارسی وقتی اگر میخوایم معنا بکنیم الله بگیم یعنی خدا این شد همون معنای لغوی بنابراین اصلا الله رو نمیشه به چیزی ترجمه کرد و معنا کرد چرا؟ چون الله یعنی اون ذات فقط شما این ازش میتونید فقط این تصور رو بکنید هر وقت میگید الله یعنی یه ذات, اون ذات نامحدود ذاتی که صرف وجود است هستی مطلق است این میشه لفظ الله بعد خدمت شما که از میشود بر همه اساس حال میگن الله اون ذاتی که مستجمع اجمعی استفادی که مانست اشاره به همین معنا دارد و یه معنای حال اربطه لغوی هم برای الله که یه ریشو گفته شده این هم یه تناسب داره عرض بکنم بعد گفتن الله اصلش و ریشه اون بود از الاخ بعد در اثر کسرت استعمال این حمزه هست شده یک الف و لام به او اضافه شده و شده الله بعد کلمه اله به معنای اون معلوح هست. حالا معلوه یعنی چی؟ معلوه میفرمان یعنی اون ذاتی که عقول درش محیرند حیرانند نمیتونه او رو درکش بکنند البته معنای ظاهری الله به معنای معبود هست ولی اصل اون یعنی اونی که متحیرون فیه اصلا عقل اینجا ببینیم حالا انشاءال وقتی معنای اکبر رو بگم یه مقدار نزدیک میشیم به این معنای شریف وقت اینجا ببینیم فقط سکوت هست اصلا نمیشه دیگه حرف زد دیگه جلوتر نمیشه رفت پس الله یعنی ارز کردم شما ذات نامحدود در دربارش میتونید حرف بزنید؟ هستی مطلق میتونید در چیزی بگید؟ هرچی بگویید او رو محدودش کردید پس بنابراین این معنای اسم شریفه خب حالا این که گفته می شود الله یعنی اون ذات پس ببینید آقا الله می شود موصوف همه اصماع دیگر حق به هیچ وقت الله خودش صفت واقع نمی شود یه توضیح بدم خدمت شما ببینید شما الان یه نفر مریض است شفا پیدا میکنه یعنی خدای سبحان با اسم شافی او شفا داد این که گفتیم شاید اسم شافی یه توضیح اینجا بدم بعد وقت ادامه ارزمان خیلی شما میگم آقا ما در هر حالی از حالاتمون تحت اسمی از اسماع حق قرار میگیریم که حالا با این توضیح شافی که میخوام بگم وقت این معناه برای واضح می شد. خب اسم شافی خودش یه اسم جزئی است که تحت اسم شریف رزاق است یا رازق چرا؟ چون یکی از اقسام رزق همین شفاست رزق فقط تنها آب و غذای خوردنی ما که نیست الان توفیق با امشب بران نماز و یا حتی گفتن یا شنیدن این مطالب یه رزق است. شفای مریض یه رزق است. بعد اسم شافی از تحت پوشش اسم رزاق است. یا رازق. دو مرتبه خود اسم شریف رازق یه اسم جزئی دیگری است. که تحت پوشش اسم شریف خالق است خالق دوباره یه اسمای زیرگروه دارد یکیش رازق است چون اون خالق است رزق میده و پس اسم رازق میشه زیرگروه خالق دو مرتبه خود اسم شریف خالق یه اسم جزئی است که زیر گروه یا زیر پوشش اسم شریف قادر است. چون او قادر است یکی از شعونات و قدرت خلق است یکی از شونات قدرت خلق کرده پس ببینید بعد اسم شریف قادر باز خودش میشه یه اسم جزئی که تحت پوشش اسم شریف الله هست ببینید این سرسله رو دقت کنید حالا بقیه اسما هم همینند اینکه خدای صبحان یه ای عادیات هم حیفهم میاد اینجا بهبراتون ارز نکنم خیلی زیباست دقت کنید ستون آیه آخر سوره هش رو دقت بکنید وقتی که خدای سبحان می‌خواد راجع به اون ذات صحبت بکنه می‌فرماد هو الله الذی لا اله الله هو بعد عالم الغیب و شهادت ببینید اینا در واقع همه اشاره هست به این اسماء شریفه‌ای که خدمت شما کرض شود مربوط به ذات است حالا و بعد و بالله الذي لا اله الا هو بعد آن الغيب و شهادت هو الرحمن الرحيم آیه دوم مربوط به ذات است هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتکبر درست اما در آیه سوم به فن عوض میشه هو الله الخالق الباره اول اون دعای شریف است هو الله الذي لا اله الله هو اما این آیه فقط می‌فرما ندام هو الله میخواد الله رو در واقع معرفی بکنه میگه اون الله بعد دیگه بقیه اسماء میشن زیر پوشش او میگه الله الخالق البار المصور بعد له الاسماء الحسنا لهن اسماء الحسنا پس تمام اسماء حسنا میشن زیر پوشش اسم شریف الله درست بعد آخر بام فرمان یوسف ما من ارض خب این آیات خیلی آیات خاصه حالا که این آیات رو تلاوت کردیم یک نکته مراجعه بینسته تو آیه خد متون ارث میکنم که انشالله قدرش رو بدونید. آمی فرمان اگر کسی این آیات رو اول صبح و اول شب سه به تلاوت بکند در بین این ساعات، اگر از دنیا برد خدا به اوز مقام شهید رو میداد. یعنی شما اول صبح بعد از اذان استعاید تلاوت کنید. اول مغرب هم که میخواد گروه خوشید کننگون کنید استعاید رو سه مرتب تلاوت بکنید. حال شخص وقتی از دنیا میاد در شب از دنیا در روز دیگه خدا او با مقام شهادت از دنیا می برند. نازمی حتما شهید بشه، شهید ظاهر. با مقام شهادت از دنیا. حالا بگذارم. غیر از این که پس الله یعنی اون ذات بعد وقت اسماء حسنای دیگه همه زیر پوشش اون ذات هست. و بعد حالا عرض کردم ان شاء برسیم به اکبر و وقت این اکبر خیلی معنا داره این من میخوام خوام ارز عرض کنم خدا ان شاء بده جرسی آینده رو بتونم این معنای اکبر واقعا یک معنای خاص یک عظمت خاص ان روزی بشه می خوام جلسه آینده عرض میکنم خدمت شما که بعد این لفظ رو وقت میبینیم چقدر عظمت دارد دیگه و بعد و حالا چرا اذان با این شروع می شود واقعا لکات عظیمه ایست نمیدونم چی عرض بکنم شما مثلا بینید حالا بعد انشاءالا میرسیم از آن ما بینید با تکبیر شروع میشه بعد با اشهدو الله اله الا الله خیلی جالبه در اینجا لا اله الا الله با اشهدو است بعد همین لا اله الا الله در آخر بدون اشهدو به شهادت است چرا؟ که این یه سر عزیمی دارد که چرا اول با اشهدو به شهادت میدم آخر بار فقط با لا اله الا الله که این اشاری به در واقع آیه از آیات و قرآن کریم است که خدای صبحانه ما رو در واقع در معدب کرده به این ادب که حالا عرض میکنیم ان شاء الله بسیار خوب حالا اجازی پس منع اکبر رو وارد نشیم چون خودش حد یه جرسه کامل رو بیشتر نیاز داری که بارش ارز بکنیم انشانه جساینده ارز میکنم فقط از جهت اطلاعات رو این لفت شریف الله دو و و و مرتبه در قرآن کمریم به کار برده شده خب خدا انشانه روزی من بکنم سبحان عرب بکرم بلعزت هم ما یسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفار المنافقين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من المسلمين اللهم اجل بليك الفرج ومحمد